به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد این برنامه رو با دو زیبا از حکیم ابوقاسم فردوسی آغاز می کنیم به دانش زدانندگان راه جوی، به گیتی به پوی و به هر کس بگوی. زهر دانشی چون سخن بشنوی، از آموختن یک زمان نغنوی. با عرض سلام و تبریک سال نو خدمت علاق مندان عزیز و شنوندگان محترم رادیو اندیشه. با پادکست دوم از سری پادکست های رادیو اندیشه با ما باشید. این برنامه شامل چهار بخش خواهد بود. در بخش اول به رهبری در سازمان، نظریات مختلف راجع به رهبری و راهکارهایی برای انتخاب سبک رهبری مناسب خواهیم پرداخت. در بخش دوم راجع به 20 ویژگی برجسته یک رهبر بزرگ صحبت خواهیم کرد. در بخش سوم، تکنیک شماره یک از سری تکنیک های در محیط کار رو خواهیم گفت. و در بخش چهارم، با تعریف یک داستان و نتیجه گیری مدیریتی که ازش خواهیم داشت، این بخش رو به پایان خواهیم برد. امیدوار این بخش های مختلفی که محیا شده، مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. از شما دوت میکنیم در ادامه برنامه با ما همراه باشید. شاید مدیریت رو بتونیم یکی از مهمترین فعالیت ها در زندگی اجتماعی بشر امروز بدونیم در اصرا حاضر به مدد این فعالیت هست که معمولیت ها و اهداف سازمان ها تحقق می میابند از منابع و امکانات موجود بهرهبرداری برداری میشه و توانایی و استعداد انسان ها از قوه به فعل در میاد مدیران در انجام وظایف خودشون فرایندی رو دنبال می کنند که شامل مواردی همچون تصمیمگیری، برنامه ریزی، رهبری و هدایت، نظارت و کنترل سازماندهی و هماهنگی هست. مجموعه این فعالیت هاست که مدیریت رو شکل میده و نیل به اهداف رو امکان پذیر می کنه. با رجوعی به تعریف این فعالیت ها و وظایف مدیریتی به این نکته قابل توجه می رسیم که رهبری یک شرایط و موقعیت ای نسبت به سایر وظایف و مهارت های مدیریتی داره. بیایید یه نگاهی به تعریف رهبری بندازیم البته این نکته قابل ذکره که همطور که یکی از دانشمندان علم مدیریت هم میگه تعریفهایی که از رهبری صورت گرفته به تعداد افرادیه که خواستن این تعریف رو انجام بدن ولی ما اینجا یه تعریف نسبتاً کاملی رو از کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی خدمتتون ارائه میکنیم رهبری فرایندی است که ضمن آن مدیریت سازمان میکوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی موثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل و کارکنان را از روی میل و علاقه انجام وظایفشان ترغیب کند. موضوع متفاوت بودن رهبری از مدیریت جمله مطالبی هست که توی سالهای اخیر خیلی مورد بحث و مباحثه قرار گرفته و مقایسهای زیادی از صفات رهبر و مدیر صورت گرفته و حتی بعضی از کارشناسان بر این باورند که رهبری چیزی متفاوت از مدیریت هست ولی با نگاهی دقیق به تعریف رهبری و مصادیق اون به این نکته پی میبریم که رهبری در مفهوم سازمان به عنوان جزئی مجزا و مستقل از مدیریت مطرح نیست بلکه یکی از وظایف مهم و اصلی مدیر به شمار میره یکی از مهمترین نکات در تعریف رهبری جهت دادن و نفوذ بر اعضای سازمان هست رهبری مستلزم نفوذ کردن و اثرگذاری بر افراد هست و مدیر در نقش رهبر کسیه که بتونه بر افراد تحت سرپرستی خودش نافذ و محصر باشه اینجا جا داره که اشاره کوتاهی به مسئله قدرت و نفوذ داشته باشیم اصولا، قدرت یعنی توانایی اعمال نفوذ بر دیگران و نفوذ اون کارهایی هست که مستقیم یا غیرمستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظریات دیگران میشه احتمالاً در اینجا این سوال پیش بیاد قدرت از کجا سرچشمه میگیره ما دو نوع قدرت داریم یکی قدرت ناشی از توانایی های شخصی و دیگری ناشی از منصب و مقام قدرت ناشی از توانایی‌های شخصی از سه منبع نشأت می‌گیرد. خبرگی یا تخصص، قدرت مرجع بودن یا صلاحیت و قدرت اطلاعات. همچنین قدرت ناشی از منصب و مقام هم از سه منبع سرچشمه می‌گیرد. قدرت پاداش، قدرت تنبیه و قدرت قانونی یا مشروع. هرچقدر یه مدیر در نقش رهبر به قدرت‌هایی که گفتیم بیشتر مجهز باشه نفوذ بیشتری رو بر روی کارکنان میتونه داشته باشه همونطوری که قبلتر هم اشاره کردیم مدیران دارای وظایف مختلفی همچون رهبری، تصمیم گیری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل و هماهنگی هستند اگر ما وظیفه و مهارت رهبری یک مدیر رو جدا کنیم چیزی که باقی میمونه غالبا حالت وظیفه‌گرایی داره و اگه دقت کنیم این فعالیت ها اکثراً روی فرایندها و نحوه انجام امورات زوم دزوم می حال اگه نگاهی از زاویه دیگه به رهبری بندازیم، در حقیقت رهبری اون بخشی از وظایف و مهارت‌های مدیر هست که با کارکنان و به عبارت دیگه با انسانها سرکار داره. تصمیماتی که یه مدیر اتخاص کرده یا سازماندهی که صورت داده و برنامه ریزی که انجام گرفته باید توسط کارکنان و منابع انسانی یا به اصطلاح بروزتر سرمایه های انسانی صورت بگیره. پس هرچقدر این بود از توانایی یک مدیر قویتر بشه میتونه در انجام فعالیت و نیل به اهدافش که همون اهداف سازمان هست موفق تر باشه. با ما همراه باشید تا ببینیم چطور میشه یک رهبر خوب و سربخش بود. رهبران موفق چه ویژگی هایی رو داشتن و دارن و ما برای موفقیت در وظیفه مدیریتمون چگونه باید رهبری کنیم؟ ادبیات و نظریات رهبری خیلی پرحجمان و به احتمال زیاد باعث سردرگمی پژوهشگران و علاقمندان به مطالعه در این حوزه بشن. حتی در مواردی مطالب ضد و نقیز هم وجود داره و این قضیه رو سختتر میکنه ولی ما برای اینکه بتونیم راه خودمون رو از میان این جنگل انبوه و دشت وسیع پیدا کنیم به بررسی نظریات اصلی و مشهور در زمینه رهبری میپردازیم و در نهایت نتیجهگیری خواهیم کرد که چه سبکی رو در حوزهٔ مدیریتیمون به کار بگیریم نظریه های رهبری به طور کلی به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول، نظریه های مبتنی بر ویژگی ها و خصوصیات فردی رهبر. دسته دوم، نظریه های رفتار رهبری. و دسته سوم، نظریه های موقعیتی و اختزایی رو شامل میشن. در دستی اول یعنی نظریه های مبتنی بر ویژگی ها و خصوصیات فردی اعتقاد بر اینه که صفات شخصیتی رهبر در اثر بخشی اون نقش اصلی رو بازی می کنن و رهبران ابرمردان مردان یا بهتر بگیم ابر انسان هایی هستند که به علت ویژگی هایی که موهبت الهی شایسته رهبری شدن بر اساس تحقیقاتی که در این زمین صورت گرفته محققان به شیش ویژگی متمایز کننده رهبران از غیر رهبران دست پیدا کردند. و این شش ویژگی عبارتند از هوش، انگیزه، جاه طلبی و میل به رهبری، صداقت و درستی، اعتماد به نفس و داشتن اطلاعات مرتبط. ذکر این نکته ضروریه که ویژگی هایی که اشاره شد در موفقیت یک رهبر تاثیرگذارند ولی تضمین کننده موفقیت اون نیستن. از اونجایی که رهبران موفقی در سازمان ها وجود داشتند که فاقد برخی از خصوصیات ذکر شده بودند و از طرف دیگه این نظریه ها به نیازها و شرایط پیروان و زیردستان توجه نداشتند و اهمیت موقعیت های متفاوت رو در نظر نمی گرفتند تجوهشگران به سمت تحقیق و بررسی و ارائه نظریاتی در مورد رفتار رهبری رفتن باید بگیم اگر نظریه ویژگی های فردی رهبر کاملا درست می بود پس وقتی فردی به دنیا می اومد می گفت که اون فرد رهبر هست یا رهبر نیست اگرچه در چند سال اخیر توجه اندیشمندان بار دیگه به سمت نظریه های صفات و ویژگی های فردی رهبر جلب شدن. با شدن ضعف های مختلف نظریه ویژگی های فردی در توصیف رهبری، به تدریج توجه پژوهشگران به های رفتاری رهبری معطوف شد. به عبارت روشنتر، توجه محققان از شخص رهبر به رفتار رهبر تغییر یافت. در این روی کرد عقیده بر اینه که رهبر ساخته میشه نه اینکه رهبر به طور مادرزادی رهبر به دنیا بیاد نظریه های رفتاری رهبری شامل تحقیقات زیر میشن مطالعات دانشگاه آیوا توسط کرت لوین و همکارانش مطالعات دانشگاه میشیگان به سرپرستی لیکرت مطالعات دانشگاه ایالتی اوهایو به سرپرستی دیل. مطالعات پرویایی گروه توسط کارترایت و زندر سیستم های چارگانه رهبری لیکرت و نهایتا شبکه مدیریت یا رهبری توسط بلیک و موتن. ما در این قسمت از برنامه به بررسی نظریه شبکه مدیریت بلیک و موتن خواهیم پرداخت. بلیک و موتن با تاثیرپذیری از مطالعات این حوزه، بلخص مطالعات دانشگاه اوهایو و میشیگان، ترکیبی از دو شیوه مختلف رهبری مبتنی بر تولید و فرد را در مدلی به نام شبکه مدیریت ارائه کردند. این دو دانشمند اعتقاد داشتند توجه مدیران منحصر به ازدیاد تولید و افسایش بهره‌وری است که یه چنین نشان دهنده شیوه مدیریت تولیدگرا یا سازمانگرا است در حالی که ارزای نیازهای کارکنان و تأمین رضایت شغلی اونها از جایگاه باهمیتی برخورداره که شیوه مدیریت مبتنی بر اون رو میتونیم فردگرا یا کارمندگرا بنامیم. بلیک و برای استقرار یک سیستم سازمانی مبتنی بر همکاری دست جمعی لازم و ضروری که میان دو قطب تولیدگرایی و فردگرایی شیوه مدیریت معقول و مناسبتری رو از ترکیب این دو شیوه انتخاب کرد این مدل شامل دو محور نه افقی و عمودی و مجموعاً 81 حالت رو شامل میشه. محور عمودی نشون دهنده توجه به افراد و محور افقی دهنده توجه به تولید هست بر این اساس پنج سبک رهبری اصلی در چهار گوشه محورها و در مرکز شناسایی میشن سبک یکی یک یا مدیریت بیخاصیت مدیران در این حالت توجه کمی به تولید و افراد دارند، مدیران این مجموعه بیشتر در نقش یک اطلاع رسان پیغام ها رو از بالا دست به پایین دست می رسونن و تلاش اونها فقط در حد عضویت سازمان هست سبک نه یک یا مدیریت استبدادی یا آمرانه مدیران در این حالت توجه کمی به افراد دارند و توجه اصلی اونها به تولید هست در این حالت کارایی بالا و انسانی کمترین دخالت رو داره و افراد در حقیقت نوعی وسیله برای انجام کار به حساب میان سبک نوه یک یا مدیریت باشگاهی در این حالت مدیران توجه کمی به تولید و توجه بسیار زیادی به افراد دارند مدیران در این حالت توفیق چندانی در دستیابی و اهداف سازمان ندارن ولی جواب سازمان آرام و سمیمیه و توجه عمیق به نیازهای کارکنان وجود دارد. در سبک پنج پنج یا مدیریت میان رو و به اصطلاح بینابینی مدیران توجه متوسطی به تولید و افراد دارند. در این حالت هدفها خیلی بالا تعریف نمیشن و احتمالاً گرایشی خیرخواهانه و مستبدانه درباره افراد دارند. در این حالت توازن بین دو عامل گرایی و گرایی وجود داره. و نهایتاً در سبک نه نه یعنی مدیریت تیمی مدیران توجه بسیار زیادی رو به تولید و همچنین به افراد دارند. اونها مدیران گروهی هستند و قادرند نیازهای افراد اهداف سازمان رو با یکدیگه همراستا بسازند. این حالت اثر بخشترین سبک هست و تعلق به سازمان و احساس مشترک در سازمان زیاده با توجه به دستاوردهای های این دو پژوهشگر، مدیرانی که از نظر رفتار در وضع نه نه قرار میگیرند، یعنی توجه زیاد به تولید و توجه زیاد به کارکنان بهترین عملکرد را دارند و برعکس کسانی که در وضع یکی یک, یک یعنی توجه خیلی کم به تولید و توجه خیلی کم به کارکنان قرار میگیرن، عملکرد خیلی پایینی رو دارن. اگرچه این شبکه مدیریتی می تونه چارچوب بهتری رو برای شیوه رهبری ارائه کنه ولی متاسفانه نمیتونه در حل معمای رهبری کمک زیادی به ما بکنه. در تحقیقات اسکاندیناوی که حدود سالهای 1990 در فنلاند و سوئد انجام گرفت پژوهشگران به دو بعد قبلی تولیدگرایی و کارمندگرایی بعد سومی رو به نام بعد پیشرفتگرایی افزودن فرض اونها این بود که دنیا در حال تغییر و تحوله و رهبران اثر بخش باید دارای رفتارهای پیشرفتگرا باشند. از این دیدگاه رهبران به تجربه آموزی ارزش میدن همباره در پی عقاید و نظریه های جدید هستند. تغییرات رو به اجرا در میارند و دارای خلاقیت و ابتکار عمل هستند. تحقیقات بعدی، ارزش قابل پذیرش بودن بود پیشرفتگرایی و اهمیت اون رو به اثبات رسوندند. در این قسمت از برنامه با یک داستان و نتیجه گیری مدیریتی در خدمت شما هستیم. روزی دو شیر از باغ وحش کردند کردن و به شهر اومدن، اینکه دستگیر نشان قرار گذاشتن که از همدیگه جدا بشن و هرکدوم راه خودشون رو برن شیر اولی مدتی در شهر پرسه میزد و از زباله و ته‌مونده غذاها تغذیه میکرد در نهایت مسئولین باغ اون رو دستگیر کردن و به باغ برگردوندند شیر اول از بس در این مدت از زباله و ته‌مونده غذاها تغذیه کرده بود حسابی لاغر شده بود دیگه مسئولین مسئول بعد از چندین روز جست و بالاخره موفق شدن شیر دوم رو به دام بندازن و به باغ وحش ببرن شیر دوم که حسابی چاق و چله شده بود وقتی وارد قفص شد و شیر اولی رو دید که حسابی لاغر و نحیف شده ازش پرسید دوست عزیز چرا اینقدر لاغر و افسرده شدی شیر اولی گفت آخه از بس زباله باله و تهمونده غذا خوردن به این روز افتادم و با تعجب از شیر دومی پرسید چطور شده که تو اینقدر چاق و چله شدی؟ شیر دومی جواب داد توی شهر وقتی از هم جدا شدیم وارد یه اداره شدم و یه گوشه قایم شدم اول مدیر عامل رو خوردم ولی کسی متوجه نشد روزهای بعد شروع به خوردن مدیران ارشد کردم باز هم کسی متوجه نشد و البته چند تا هم کارمند خوردم. اما روزی که آبداچی رو خوردم همه متوجه شدن و منو به باغ وحش آوردن. اما نتیجه گیری مدیریت این داستان اگر رهبری و مدیریت ما به ای باشه که هیچ تأثیری در سازمان نداشته باشیم و به اصطلاح در نقطه یک و یک شبکه مدیریتی بلیک و متن یعنی رهبری یا مدیریت بیخاصیت قرار بگیریم، وجود یا عدم وجود ما هیچ اثری بر سازمان نخواهد گذاشت. ولی در صورتی که رهبری اثر بخشی در سازمان داشته باشیم، قطعا اثرات مطلوب این امر در سازمان مشروط بوده و علاوه بر افزایش بحروری سیستم، کارکنان رو نیز به سمت پویایی و رضایت شغلی بهتر هدایت خواهد کرد. رهبری موثر در سازمان عامل اصلی و اساسی در ایجاد همدلی و همگرایی هست. رهبران موفق کسانی هستند که بتونن افراد متفاوت رو در زیر چتر فکری و نظری واحد کرد بیارن و این درک رو ایجاد بکنن که این روح جمعیه که واجد ارزش و اعتباره. اینجا ما مهمترین و مشهورترین اقداماتی که در جهت توضیح رهبری از نظر ویژگی‌های فردی و مدل رفتاری صورت گرفته بود رو شرح دادیم و اینها حاکی از موفقیت نسبی در این زمینه بودن ولی اونچه که در این بین مورد توجه قرار نگرفته عوامل موقعیتی و به اصطلاح اقتضایی هست که میتونه بر موفقیت یا شکست رهبر اثر بگذاره بذارید یه سوالی رو مطرح کنم. آیا سبک رهبری در چهل 50 سال گذشته یا 20 سال گذشته با الان یکیه؟ یا سبک‌های رهبری در بخشی از سازمان که کارهای مهم و پرتنش داره با بخشی که کارها تنظیم شده و از قبل مشخص هستن باید یکسان باشه یا متفاوت باشه؟ رابطه بین شیوه رهبری و اثر بخشی بیانگر اینه که تحت شرایط الف شیوه X مناسبه اگه شرایط ب برقرار باشه، شیوه وای کارسازتره و برای شرایط جیم، شیوه رهبری زید مستر تاره. ولی آیا شرایط الف و ب و جیم چگونن؟ توجه به این موضوع که اثر بخشی رهبری به فلان موقعیت بستگی داره، یه موضوعه و توانایی در شناسایی شرایط موقعیتی موضوع دیگه تلاش های زیادی انجام گرفته تا عوامل موقعیتی که بر اثر بخشی رهبری اثر میگذارن تفکیک بشند برای مثال متغیرها و عواملی مثل نوع رابطه رهبر با اعضای زیردستان، موضع قدرت رهبر روشن بودن نقش زیردستان هنجارهای گروه در دسترس بودن اطلاعات پذیرفتن تصمیم رهبر به وسیله زیردستان و رشد و بلوغ زیردستان برای شناسایی و تفکیک عواملی که بر برشموردیم تحقیقات و کارهای زیادی صورت گرفت که بعضی از روش ها موفقیت آمیز بودند و ما راجع به بعضی از اونها صحبت خواهیم کرد. نظریه اقتضایی فیدلر نخستین الگویی که در مندیلیت اقتضایی ارائه شد، توسط آقای فیدلر انجام گرفت. در این الگو فرض بر گذاشته شد که عملکرد موثر مؤثر رهبری به ارتباط مناسب بین رابطه رهبر و پیرو، ساختار کار و قدرت رهبر، بستگی داره. فیدلر پرسشنامه رو به نام LPC یا پرسشنامه ناخوشایم همکار تهیه کرد. و از اون به بررسی وضعیت رهبر در مورد سه شاخص پرداخت نتیجه تحقیقات نشون میده نمره کسانی که به این پرسشنامه پاسخ میدن ثابت نمیمونه و از طرف ارزیابی هرزیابی متغییرهای اقتضایی بسیار مشکل و پیچیده هست و اغلب در مرحله امن نمیشه مشخص کرد که رابطه رئیس و مرعوص تا چه اندازه خوبه یا ساختار کاری که باید انجام بشه به چه صورتیه؟ همچنین میزان قدرتی که رهبر میتونه اعمال کنه نمیشه تعیین کرد. ولی دستاورد های فیدلر چه کاربردهایی هایی میتونه داشته باشه؟ پاسخ اینه که باید رهبران رو در خور شرایط و موقعیت موجود سازمان به کار بگیریم. یعنی با توجه به اینکه از نظر فیدلر سبک یا شیوه رهبری فرد تغییر نمیکنه، پس برای ما دو راه باقی میمونه. اولین اینه که میتونیم رهبر رو با توجه به شرایط یک بخش از سازمان یا یک گروه کاری انتخاب کنیم. به طور مثال یک تیم فوتبال رو در نظر بگیرید که مربی اون با توجه به تاکتیکی که در بازی استفاده میکنه از هافبک ها و فوروارد های تکنیکی شوتزن و یا سرزن استفاده میکنه و با تغییر تاکتیک جای بازیکن ها رو عوض میکنه. و راه دوم اینه که شرایط حاکم بر اون بخش سازمان یا گروه رو تغییر بدیم و متناسبش کنیم با اون رهبر برای انجام این کار میشه ساختار کاری رو تغییر داد یا میزان قدرتی که اون میتونه اعمال کنه رو کم کرد یا زیاد کرد توی مثال فوتبالی ما هم اگر ما بازیکنی رو داریم که میخوایم از اون درجه خاصی استفاده کنیم تاکتیک بازی رو متناسب با بازی اون بازیکن تنظیم میکنیم به قسمت برنامهمون رو با تئوری موقعیتی هرسی بلانچارد ادامه میدیم. با ما همراه باشید. یکی از متداول ترین و کاربردی ترین الگوهای رهبری که به نام تئوری موقعیت ارائه شده، توسط دو پجرهشگر به نام های هرسی و بلانچارد صورت گرفته. بیشتر سازمان‌های های بزرگی دنیا که مجله فورچون، اونها رو جزء 500 شرکت موفق ردبندی بندی می میکنه، این روش رو به کار می برن. شرکت شرکت‌های مثل ای بی کاترپیلار، زیراکس و شرکت نفت موبیل برای آموزش مدیران خودشون از این شیوه استفاده میکنن. نظریه موقعیت رهبری بر انتبال رفتار رفتار گرایی و رابطه گرایی رهبر با آمادگی پیروان تأکید میکنه. و بلوغ یا درجه رشد پیروان رو تعیین کننده سبک یا شیوه رهبری رهبر میدونه. به نظر شما چرا رهبر باید به پیروان توجه کنه؟ و بلوغ پیروان چه معنی میتونه داشته باشه؟ در ادامه با هم به این سوالات پاسخ خواهیم داد. خب اون چیزی که مشخصه اینه که موفقیت و اثر یک سازمان یا گروه در گرو اینه که آیا پیروان رهبر اونو می‌پذیرن یا نه صرف نظر از اینکه رهبر چیکار میکنه، موفقیتش در گرو کارهای پیروان هست واژه بلوغ یا رشد یعنی توانایی و تمایل افراد در قبول مسئولیت نسبت به هدایت رفتارشون بلوغ و رشد رو از دو نظر میشه مورد توجه قرار داد. از نظر کاری و از نظر روانی. از نظر کاری بالغ شدن فرد یعنی ارتقاء دانش و مهارت‌های حرفه‌ای او. و از نظر روانی اونهایی که به حد کمال رسیدن به تشویق و ترغیب بیرونی نیازی ندارن و مشوقهای درونی براشون کافیه.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 در مرحله اول بلوغ افراد نتوانایی دارند و نه مایل هستند که مسئولیت انجام کاری را به عهده بگیرند. در مرحله دوم بلوغ افراد توانایی انجام کارها را ندارند ولی آمادگی و میل قبول مسئولیت ها را دارند. این افراد محرک به های قوی دارند ولی فاقد مهارت لازم هستند. مرحله سوم از بلوغ افرادی رو شامل میشه که توانایی و مهارت انجام کار را دارند. ولی نمیتونم به اون چیزی که رهبر میگه گوش بدن و انجامش بدن. و نهایتاً در مرحله چهار از بلوغ، افراد هم توانایی ها و مهارت‌های لازم رو دارند و هم علاقه و تمایل و انجام اون کارهایی که ازشون خواسته شده رو دارن. پس در این الگو با ترجمه دو بود رفتاری یعنی رابطه گرایی و وزیف گرایی. با در نظر گرفتن بلوغ زیردستان چهار سبک رهبری به وجود میاد که عبارتند از سبک دستوری یا آمرانه، سبک تشویقی یا اقنایی، سبک حمایتی یا مشارکتی و سبک تفویزی با توجه به محدودیت وقتی که داریم به اختصار به توضیح این چهار سبک خواهیم پرداخت در سبک دستوری حامرانه که برای موقعیت مرحله اول بلوغ افراد به کار میره، رهبر نقش افراد و پیروان رو تعیین میکنه و بهشون میگه چگونه، چه وقت و در کجا چه کاری رو انجام بدن. در این سبک از رهبری روی ها تاکید خیلی زیادی میشه. در سبک تشویقی یا اقنایی که برای موقعیت مرحله دوم از بلوغ افراد هست، رهبر ضمن صدور دستور و روش های انجام کار تصمیم ها رو تشریح میکنه و به حمایت کارکنان می و اونها رو برای انجام امور تشویق میکنه. سبک حمایتی یا مشارکتی این سبک در موقعیت مرحله سوم از بلوغ به کار میره. تو این سبک رهبر و پیروان در فرایند تصمیم گیری مشارکت می کنن. سیستم ارتباطی دو قوی به وجود میاد و ایفای نقش رهبری آسمومتر میشه. به در سبک تفویضی که برای افراد با بنوغ مرحله چهارم به کار برده میشه با توجه به اینکه افراد نیاز کمی به حمایت و هدایت دارن رهبر تصمیم گیری و اجرای امور رو به افراد و پیروانش تفویض میکنه سبک ها و نظریهای رهبری به مواردی که ما اشاره کردیم محدود نمیشن و همون که در اول برنامه هم گفتیم به جنگل امغوح و دشت وسیع شباهت داره که باید راهمون رو در اون پیدا کنیم. اون چیزی که از نظریهای مختلف میشه نتیجه گرفت اینه که رهبرانی که بر رفتار خودشون تسلط کامل دارن و شناخت دقیقی از شخصیتشون در اختیار دارن میتونن با تغییر یافتن موقعیت‌ها شیوه رهبری خودشون رو با شرایط جدید وفق بدن. ولی اونایی که از چنین ویژگی های برخوردار نیستن باید شرایط رو به گونهی در بیارن که با سبک و شیوه رهبری اونها متناسب باشه همونطور که دیدیم برخی از اندیشمندان به نظریه های, ویژگی های فردی رهبر تعدادی به نظریه های رفتاری رهبر برخی دیگه به نظریه های و موقعیتی معتقد هستند. ولی ما اعتقادمون اینه که ما میتونیم از این جنگل و دشت وسیع، گیاهان و گل‌های اثر بخشی رو دستچین بکنیم و برای موقعیت‌ها افراد و مشکلات مختلف مرهم مناسبی از اونها بسازیم. به امید روزی که مدیران کشورمون در سازمان‌های خودشون رهبری اثر بخشی رو به اجرا بذارن و نتیجه این امر رو در بهره‌وری صنعت کشور عزیزمون ایران شاهد باشیم، انشا در خدمتتون هستیم با 20ست یک رهبر بزرگ. از شخصیت خوب، جاذبه، تعهد، ارتباط معصر، داشتن لیاقت، شجاعت، داشتن قدرت تشخیص و بصیرت، تمرکز، بزرگواری، ابتکار، خوب بوش فرادادن، اشک به کار داشتن، نگرش مثبت داشتن، مشکل گشاب بودن، مسئولیت پذیر بودن، بر نفس خود مسلط بودند، خدمت کذار بودن، همواره به دنبال آم محتند بودن و ویژگی آخر آینده نگر بودن. تکنیک شماره یک از سری تکنیک های در محیط کار جذاب باشید هیچ شکی در این باره وجود نداره که افراد جذاب راحتتر از افراد کم جذبه پیشرفت می‌کنند. اما چه چیزی فردی رو جذاب میکنه؟ اگه به کسی نگاه کنید که اون رو جذاب میدونید ممکنه خیلی به زحمت بفهمید چیزی که اون شخص داره و اون رو چنین جذاب میکنه چیه؟ اگه نقایست فیزیکی آشکاری مثل دندونای جلو اومده یا موارد دیگه رو که البته اکثر اونا رو میشه اصلاح کرد نادیده بگیریم تعریف جذابیت خیلی مشکله هر ستاره سینما یا ورزش رو که میخواییم در نظر بگیریم اون ستاره هایی که از دید ظاهری چندان زیبا نیستن و ما میتونیم ببینیم که کاریزما، کشش و نگرشی عالیتر از افراد عادی دارن اینجور آدم ها اونها سرزندگی، حضور، تاثیرگذاری، قدرت و شخصیت دارند شما هم برای جذاب بودن باید چنین چیزهایی رو داشته باشید کسب این خصوصیات تر از اونی که فکرشو بکنید اگه خوب لباس بپوشید به آراستگی خودتون توجه کنید عادت کوی تبسم داشته باشید و همیشه خوب و متین به نظر برسید و اگر به عنوان شخصی با محبت گرم، خوش و مهربان با دیگران برخورد کنید، شما هم جذاب جلوه خواهید کرد. چشمانی که برق میزنم و سرشار از زندگی هم باعث میشن فکر کنیم تمام صورت جذابه. علاوه بر اون جذابیت به حالت و وضعیت بدن هم مربوط میشه. اگه با پشت خمیده راه برید، حاله از تیرگی و افسردگی ایجاد میکنه. این جذابیت نیست و خوب به نظر نمیرسه. راه رفتن شما باید راست، بابوحت و مطمئن باشه. همینطور دست دادنتون. همه چی در مورد شما باید آشکار و علنی، با اعتماد به نفس و محکم باشه. و سرووزه شما باید بی نقص، انتخاب لباستون عالی، شیبه لباس پوشیدنتون متفاوت، اما مطبوع و در کل رفتارتون با شکو و برجسته باشه. این جذابه. و در نهایت هر چیزی رو که جذاب به نظر نمیرسه درستش کنید. مثل بوی بد دهان، دندانهای خراب و غیره. ما خواهیم داشت به برخی از دوره‌هایی که در خصوص رهبری توسط انسیتو اندیشه برگزار میشه. آشنایی با سبک‌های رهبری، رهبری به وسیله هوش هیجانی، رهبری به مبنای مدل EFQM، اصول رهبری اثر رهبری در هزاره سوم، پرورش مهارت‌های رهبری و سایر دوره‌هایی که علاقمندان میتونن جهت اطلاعات تکمیلی به سایت ما مراجعه کنن. و یا با ما تماس بگیرم. اندیشه پلیس به سوی بهرودی سودابر شود به گذشته بازگشت و یک آغاز زیبا ساخت ولی می شود همکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد شما علاقه مندان می توانید نظرات خودتون رو از طریق وبسایت سایت با ما به اشتراک بذارید شما رو تا پادکست بعدی به خدای بزرگ بسپاریم. شاد و سربلند باشید.